و آله طیبی و قاهرین محسونین تعالی مجمعی حمد حمد از رو در اینجا اعلام دبون صورت کلمات مکنون شکل قدس الله صلی شریف مطرح ماهم این که اصل بحث اصطلاحاً روی عبارت شیخ بود اعلام ان مکلف در تحت حکم شرعی که آیا مطلع شامل مجتهد و مقلد میشه یا خاص مجتهد بود و بذا این بحث رو مطرح کردن که این از ان تفاوت این قید, قید اختیاری یا قید توضیحی اگر اتفاق مراد انتفاض اجمالی باشه میشه قید توضیحی و اگر مراد انتفاض تخصیلی باشه هم مکلت خصاص موشت افتاد می و هم قید احترازی خارج باشید شد. شد این مطالب رو دیروزون تحرس شدیم و عرض شد که این مسئله قید از کلمات بحث دیگری و همراه دیگری هم مطرح شد و اینکه اصولت با قطعه نظر از کلمات مفهوم شیخ آیا از دلیه و, و امارات و اصول عملیه شامل مقدر هم میشه مثلا کنه حضور یقینه بشن البته محل کلام همینطور که سابقا و ارز کردین در حکم کلیز یعنی علمان مکذفه داره خبت ایلا خکمه این مراد از دکه حکم خکم کلیز نه اینکه که مراد از بکن موضوعات خارجی یا بکن جزی باشه اصولا ما در اصول بحثمون اینه مثلا در اصول بحث از اصولی که در موضوعات خارجی جاری میشه متعارف نیست مثل اصال قدم تسکیل بحث از اصال قدم تسکیل تو اصول انجام نمیدن این همونه غالبا تو فقه یا تو عواد فقهی انجام پس مراد از این تقسیم که یا قرد بیران میشه یا زن میشه یا شرک نسبت به حکم کلی بله این هست که ممکن است مراد از حکم کلی در اینجا اهم از فرگی و اصلی باشه مثل حوارد مسائل حواردی بلکه هم از اخلاقیات باشه مستحبات باشه مراد از حکم در اونجا, اونجا اونجای که مربوط به شارع میشه برمیگرده به شریعت مقدسه در تمام شمونش خصوصا فقه نیست اون رو که ما نستنبات بکنیم از مجموعه ادله حالا اصول در اونجا تصور بشیاره اون بحث دیگری است مثلا در مستهبا اصافر برای جاری میشه یا نمیشه یا قاعده لازر رو جاری اون بحث دیگری است کندقا عزیل لازر رو هم یک تفصیل و الا اون بحث خاص خودش میشه به طور کلی مراد شیخ از اینجا تقسیم به لحاظه حکم کلی است مثلا این مطلب رو من در بحثه گذاشتم عرض کردم دیشب نگاه میکردم امروز صبح مزده خاشی آی آیاشیانی که به استضافه بقول نجفی ها بکنند شیخ یعنی بحرال فواده که چاب شده همچین مرموم ریزای شیرازی که اون هم فوق العاده به شیخ نزدیک بوده مرموم مجدد شیرازی بست هر دوشون نوشتن که شیخ در از درس اون گفت مراده من از فوق کلیس. هست. من کلیست خارجن گفته بودم این هم تو شاگرد ایشان که مراد ایشان رو حکم کنه تو توی اصول روی احکام کلی بحث میشه اصلا توی موضوع موضوع بررسی حجب نصد به حکم کلی موضوعات خارجی اگر مطرح میشه مثل اساس و عباهه در موضوعات خارجی این به قول آیان حکم استطرادی یا به حکم باب لباب اصطلاح ذکر شده بلا. اساس کارمونه بسیار حالا ارز شد به اینکه که این بحث ابتداراً روی کلمات شیخ بود یعنی محفظ شده که بحثی بود بعد رسید به اینکه که اصولاً و اصول و امارات مثلات هم خود داری اقینه آیا شامل مغلط هم میشه یا نه و اخصاص او نداره همه حدیث امروز که در ترگیه خود این حدیث آیا خطابش به خصوص مشتهدینه یا شامل مقلد هم میشه مثلا خود ناشته این خوابه این شامل مقلد هم میشه یا خصوص مشتهدین پس یک نقطه بحث در کلمات شیخ بود مردم ناینی به کلمات شیخ نسبت داده که مراد در مکلد مشتهده التفاظ هم مراد ارتفاع تصیب روز مرموم ناینی شاگرد مرموم شیخ نبوده ایشان هم تو که در روز ارز کردن برای شرح، مبانی شیخ کاملا شهر بزرگوار و محفظی هستن باید این چون ایشان نبوده نسبت به اینکه عبارت مرحوم شیخ رو اونجور معنا بکنی خواهی نخواهی ندا با شبه رو میشه بحث دوم بحث لسان عدله بود که آیا لسان عدله اختصاص به داره یا شامل مقلب هم میشه بحث سوم بحث روح قانونی بود یعنی روح اصلا اعتبار کار برسان روح اعتبار مثلا براءت اعتبار براءت یعنی روی اینکه شورای مقدس در شبهات غیر معلومه‌ای و اساس علم اجمالی حکم براعت براءت کرده یا اختیار کرده اصلا بگیم این جور عدله روحا و واقعا مراد از واقع در رأی اعتبار توی عالم اعتبار اصلا مقلد رو نمیگیره روح قانونی اونها لا تنوازه یقینه به شک در مثل شباهات موضوعیه مثل که صابقا تا آرد داشته حالا موکمه به تا میگیره اما روحی به شباهات موکمه کلی رسی دیگه نمیگیره مثلا روح قانونیش مانه یا شبیه مایگورو متعارم یک قریبی سیاقی هست یا قای اوقات میگن مخصص عقلی نه اینکه عقلی به این معناه یعنی اون ادراک ما در اعتبارات قانونی موافق است و اینکه که مثلا مثل لاتنگوز مثل استسحاب مثل برایت مثل اشتغال که در احکام کلیه شریعی وارد بشه دفت بکن احکام کلیه مثل اینجور چیزها اصولا مغلض رو نمیگیره لاتنگوز الیقی نبشه مقلد رو نمیگیره و خطاب به مجته دینه روشن شد پس سه تا یعنی سه تا محور اساسی در بحث متاسفال مردم استاد محور بحث رو جروز دیگه قرار دادن که دیروز خوندیم یه دفعه این حالات سلاس رو نسبت به مشتهد نوشتن یه دفعه این حالات سلاس و نسبت به مقلد نسبت به حکم واقعی و حکم ظاهری برای خود و مقلد نروشتن از خیلی مفهوم نشد مقام سوم این است که این حالات طلاسی که برای مشته پیدا میشین استاد مقلد بله بعضیشون مثلا چون دو مقام خوندیم بعد خیلی مختصر میخوام رد بشن چون خیلی ارزش که وقت خودونو بگیزد مشته اگر اتفاق کرد به حکمی که متعلق است به مقلد خودش احکامی که متعلق به مقلد به تعبیر استادیا واقعا اصلا شاملونه نمیشه مثل که مرد از مشته و احکام زن رو مخواد بررسی بکنه یا بلتر زن با اون مشامل میشه اما به تحبیر ایشان نداره من انشاءالله تعالی تو امر چهارم راجع به کلمه فعلیت با صحبت به امر سه بوم به تعبیر استاد راجع به کلمه فعلیت صحبت نام تا حالا چند بار صحبت کردوید بکن توضیحات کافی رو عرض نکردن میشون توضیح کافی رو عرضون یه اسطلاحیز مرحوم نا و, و استاد اصطاد هم خیلی جه ها پی، پی کردن دنبالی نصد اون اصطلاح فعلیت در اصطلاح ناینی اینه هر وقت حکمی اون شرایطی که درش معتبر محقق میشه با تحقق شرایط اون به اصطلاح شرایطی که به منزله موضوع هستن اونو حکم خیلی میشه مثلا الان که مثلا فرسین چیز اینه از سه ساعت تا ارزان زهره حکم وجوب نماز ظهر هست اما این وجوب هنوز فعیلی نشده وقتی ازان زهر یا زوال شمس شد اون وقتی این حکم فعیلی میشه اصطلاح فعیلی در اصطلاح نایی نگینه بلا نه خیلی از اون مراهلی که ما گفتیم از اون مراهلی که ما گفتیم یعنی این انشا هست شارع قرار داده گفته بعد از زبادشت هم چهار رو کرد ناز تو مقام اینشا تام هیچ مشکل نمید اما فعیلی نشده فعلیت این به که فعیلیت این به این است که به صورت زوال بشه و خیلی لذا ایشون مثلا چند تا باغ رو در اصول نظرات خاصی دارن یکی تو واجه معلق مثلا ایشون واجه معلق باطل میدونن واجه معلقی که به اصطلاح در مقابل واجب مشهود این میگن نمیشه واجب معلوم معناش این است که وجوب فعلی بشه واجب استقبالی تفصیری که مردم صاحب برای واجب مشهود گفته بود این رو فقای ما اجمالا قبول کردن اصولی این رو یک واجب دیگری قرار در مقابل واجب مشهود واجب مشروط اون است که وجوب و واجب هر دو استقبالی باشن مثلا میگه اگر مهمان آمد نان بخرد الان که مهمان نیامده وجوب نیست، اون نان خریدن الان نیست. اگر مهمان آمد هم وجوب میاد هم نان خریدن. اون نان خریدن که موضوعه زمانش آمدن مهمان صاف اصول اون رو اینجوری معامله کرد. اگر مهمان آمد نان بخر وجوب الان هست، اما واجب که نان خریدن باشه بعد از مهمان این با عامل اصولین ما اسم دیگری داشتن در مقابل واجب مشروط اون رو اسم مشروط جایی که فهر، حکم و موضوع هر دو استقبالی باشه اسمش شو بشن واجه مشروط و گفتن این عبارت اگر مهمان آمد نان بخر معناش اینه مثلا معنی این عبارت اینه یعنی الان وجوب نیست واجب همکنان خریدن الان زمانش نیست زمان وجوب و واجب عبارت از وقت آمدن مهمان بعد آمدن گفتن بله این که حرف که زده ولی حرف صاحب حصول تفسیر این واجب مشروط بود با عنوان تفسیر قبول نکردن واجب مشروط هم جمعه امتونه یه واجب هم ما بشه اضافه بکنیم اون واجب معلق در واجب معلق وجود فعلیه واجب استقبالیه ان در باست واجب معلق وجود معلق مثل همه جهه دو برس میشه یه برس اینه که آیا فی نفسه تو ممکنه وجود فعلی باشه واجب استقبالی باشه بحث دوم از این عبارت این معنا کاه فهمید یا نه اگر مهمان آمد نان بخرد از این عبارت واجب معلق فهمید میشه پس دو تا بحث یکی امکانش بی نفسه در قانون درسته این مطلب که وجود فعلی باشه واجب استقبالی باشه دوم اینکه از این عبارت اگر مهمان آمد این معنا را می یا نه صاف و گفت می فهمیم بعدی ها آمدن گفتن نمی فهمیم اشکالش نسن این قسمت قدقت شد مثل رو خویی مثل دیگران گفتن اگر گفت اگر مهمان آمد نام بخر ازش واجب مشروط می فهمی. یعنی هم وجود و هم واجب استقبالی هم صاف گفت نه ما از این واجب به ما معلق می وجود فعلی واجب است. مرموی نایدی اصلا گفتن این معقولی اشکال مرمون نایلی فسر فهم نیست اشکال مرمون نایلی اصلا واجر معلق معقول نیست مراد از عدم معقولیت در رعای اتبارات قانونی این اصلا معقول نیست سر عدم معقولیتش اینه میگه نمیشه حکم فعلی بهشه هنوز موضوع اشکالی نشد اون اشکالی رو روی این تفسیر فعیلی که میگه مراد اینه روشن شد میگه چطور میشه مهمان نیامده این مهمان آمدن این موضوع از برای شرط از برای تا این شرط حاصل نشه خوف نمیاد تا مهمان نشه خوف نمیاد روشن شده پس مرمو نایمی کلمه فعلیت رو به این معنا گرفتم و ترکیب اثرش هم اینه ترکیب اثر که خودشون دادن یکی تو وقت واجه و معلل یکی تو اصطاب تحلیقی تارن یکی اولا گفتین بسید به باشید خودش لی زمر هم استصحاب تعلیقی رو جاری نمیذارن. واجب قبول نذاره. اصلا نمیشه. اصلاً میگه واجب معلم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه این, این حک فعلی نمیشه تا مهمان نریده حک پیگیری نشده تعقل نداره که حک فعلی بشه. نمیشه از همین زمان انشاء حک فعلی بشه، واجب استقراری بشه. چرا چون ایشون تعلیق رو به این معنا گرفتن. یه معناس ما ان شاء الله همین امروز برسیم شده فردا این داریم تا باشه سه چهار معنا ان برای فعل باشه ما مصطفی جواد فعل برادشون اینه روشن شد چون ناگونوی فرمودن به این که شروطي که قیودی که در ناگه موضوع میاد اینا دو جوره یا اونایی که اختیاری هم تحت اختیار انسانند یا اونایی که اختیاری نیستن یاد تعبیر ایشان که تحت دایره تلفوق دایره تلف اموری که اختیاری نباشن به تعبیرشان فوق دایره طلبن. طلب, طلب اینها نمیخوره. مثلا اگه باغم صلاط به جلو کشم، طلب به جلو کشم نمیخوره. به صلاط میخوره، به جلو کشم نمیخوره. اینایی که طلب و اونها نمیخوره میگه فوق دایره طلب. یا به تعبیر دیگه رو خودشان ایشون محفوظ الا اون چه مفروض باشه، اون رو ایشون میگه خارج و موضوع استلایشان در موضوع اینه. و تا موضوع نیاز به فیلی هم نمیشه نیه. این اصطلاح رو خوب حفظ رو خانی. پس دلوک شمس موضوعه مثل آمدن مهمان آمدن مهمان چون آمدن مهمان فوق داره طلب بود به شما نگوخه برو مهمان بیامه مهمان هر وقت خودش آمد این میشه چی میشه محروض حسول یعنی طلب به این تعلق نگرفته فوق داره طلبه تلبه تلبه به تعلق امه به تعلق نگرفته هر وقت خود مهمان آمد پس آمدن مهمان میشه موضوع اگر شد موضوع طبق قاعده ای که اعرض کردیم در مثل موضوعات تا اون موضوع فعلی نشه حکل فعلی نخواهد شد یاده ایشون میگه معبول نیست که الان وجود بیاد هنوز مهمان نیامده میخواد شد آن دیگه میگه نه مشکل نداره تو آلم نه اعتبار وجود رو بیاره و آثار خاص خودش یعنی موهیلی باشه در مقام اعتبار باید یک اثری برش متراکم بشه اگر الان وجوب رو بیاره هیچ اثری برش متراکم نشه لغوه راسته نه اینکه معقول نیست لغه اما ممکن است وجوب رو الان بیاره به لحاظ آثاری که داره اثری برش متراکم میشه اون واجب استغوالی باشه بناذا میگن و اینکه این وجوب فعلیت پیدا کنه فعلیتی به این معنا نمیگیره اصلا اینکه به معنا تاثیر نداره پیشا تو جزات ثوابرن در خلال بحث‌ها هم ان شاء الله خواهد شد. ما چون این بحث خیلی نداره ما بیشتر که می‌تونیم نکات ثانوی و ثالسی و رو زمینه مطرح کنیم که برای شما مفید باشه کاملا. دقت پس یک معنای فعلیت اینه. البته اون بحث واجبه معلله گفتم ما نمی‌گیم که واجبه معلله و جو امکان داره، معقول هست، ممکن هست، فقط با ترتیب اثر داشته و اما اگر گفت اینجا جا اکزهی کن فشته خوبست ظاهرش واجب مشروطه وجوب معلق نیست این که از این عبارت وجوب رو فعیلی بفهمیم واجب رو استقبالی خلاف ظاهره. این عبارت ظاهره در وجوب مشروطه هر دو استقبالی هم اما ناینی می کنید معبول نیست نه معبول هم هست در حساب تعلیقی از ایشون همین همینجج میفهمم حساب علی جاری نمیشه ما در اونجا با ایشون موافقم اینکه حساب تعلیقی جاری میشه تا یک نکته دیگری هست نه این نکته که خود ایشون روش اصرار دارن توضیحاتش تو خودش اون به فعلیتی این کلمه فعلیت رو استاد چند بار تکرار میکنن در اینجا جای دیگه میخواستم این توضیح رو بدم بعد از اینا تو امر سوم توضیح بیشتر فعلیت مراد اینه که احکام الحج مع عدم كون مشهد مستفيئا خود مشهد مستفيی نیست بلکه احکام هجر میگه یا احکام زکات مع عدم کونه زمینه کونی به مشهد مع ما عدم مالکن مالکند نصاب چون نصاب نداره پس حکم وجوب زکات انسابیشا فعلی نیست به قضید اگر نصاب آمد موضوع محقق شد اون وقت میشه فعلی این یه اصطلاحه در فعلیت ها ان منتظر که اند معانی دیگه فعلیت ان شاء الله بعد ایشون میفرماید به اینکه اگر قاعده ادا شد فلان و اگر زن هم شد کس بعد ایشون میسن قضیه استشکل و رجوع که موضوع جریان اصل موضوعش مکلف شاکه و مقلد الذي يتوجل تکلیف ليس له شک في الوصف مکلف که مشمول لکن غیر منطبق دهنه چون انقاض و مراجعه انقاضی فکیفه یختی المشتکی حقی امدل اصل و المشتکی مکان شاکن الا ان تکریر غیر متوجه الهی مطلبی که ایشان مطرح کرده میگن مرحوم استاد قدس الله سره مطلب رو با اون صورتی که بنده از این خدا ورسی تنقید کردم نکرده اعظم سه تا مطلب اشتباه نشه یک از عبارت شیخ انصاری چی فهمیده میشه این رو در تفهیم 4 دروس فرمودند مرادمون المکلب المسخول که کلام شیخ انال خصوص مشته در عالم مقتضل اثلاف از ثانی از کلام شیخ اظهار کدن شامل مقلل هم میشه. ولی سه دیگه به این مناسیت خودشون بحث کرده دو عدله لحظیه‌ای که در بابه اعتبار و حسول و امارات یا بحث تا داریم، آیا شامل مشته در مقلل هرزم میشه یا نمیشه یا خصوص مشته سه روح قانونی که در اعتبار هماره یا اصل آمده آیا این میتونه شامل مقلد هم بشه؟ چون این مقلد نیست که قطع و زمین و شکل داره قطع و شک و, و به درد نمیخوری مشهره اوست این قضیه یا سشکل سر رجوع به به انجریان موضوع موضوعهو المکلف و شا این اشکاله ایشان بیشتر نازره به این جهت سرومه به روح قانونی خیلی تقریب روشنی نفرمودن اما این اشکال بیشتر بغون میخوره بعد فرمودن و عجابه ان روشه خونل انصاری و اول مشهد این جواب رو شیخ در اینجا نفرموده آفیان به مناسبتی تو بحث اصول عملیه تو برایت اشتغال دارن این در این شاپ جدید از بحث برایت اشتغال نهار کرده. در اونجا به یک مناسبتی مروم شیخ دارن به ان مشتهد نائب عن المقلل فی اجراء بحث نیابت از شیخ انصاری نرو شده مرحوم عازيام همین رو میگه علاوه بر مازیام نیابت رو مطرح میکنه چون مثلا قاضی خوده اقا عبدالله برای میخواد دیگه فرض کنه به ان هر ثلث خود مقلل کی میتونه ترس کنه ترس مشتهد انجام میده مشتهد نیابتا علی المقلل فرض انجام یا من فرض کردم بیان نبود فرض کردن بیانی نداشت ولی داشت کنیم برایت جاری کنیم سیقت کردیم پس ایشون می که مشتهد نیابد داره اصل مطلب در عبارات شیخ روده مرموم آزی, آزی اینجا مطلب کنیم تو این مسئله مقدمه بحث حجر و همارات و اصول در اینجا مطلب میکنه فیرکون و شک میند مشتهد و منظرات شک میند مقلب بعد ایشون مرموم آزی خوبی فرماید مفیه اینا رو خود ایشان چون بعدها توضیح ندادند و این چون فوائدی داره ما این کمی رو این مثلا توضیح میدیم ان سالا. الله تعالی ایشون میگه لا دلیله نیابه دلیلی بر نیاب نداره عدل و اصول هم لا عموم ها لشک نیابی شامل شک نیابی نمیشه عموم نداره مرادش داشتیم مثل لاتن قضا به شک ظاهر شک خود انسانه نه شک یکی دیگه اون توی من نداره اگر کنم که این مطلبی که ایشون در دا اینجا دارن خیلی مجمل فرمودن و عدله ال اصول عملیه لا تشمشوش این بحث رو به صورت مفصل و به صورت مستوفا در کل جزء اول و اولوها تو مباحث الفا من جزء اول محاضرات آخویی در جلد دوم محاضرات یا بر جلد دوم محاضرات مرنی استاد یا سوم دوم بحثی از به نام تعبدی و توسلی که در ذهن رو بارتونه هست بعدها به بحث تعبدی و توسطلی یه بحث دیگری هم اضافه شد این بوده در کتوب مثلا اهل سنت و شیه علمای متعشکر ما این رو تو بحث تعبدی و توسطلی آوردن اگه آن بدونم و اون بحث تعبدی و توسطلی این است که آیا زواهر عدله اعتبار مباشرته یا نه مثلا عقم صلاح نماز بکن آیا ظاهرین که خود نماز بمون یا شامل دیگری هم میشه نائب بگی حقیق نصلا یعنی آیا مهم این است که نماز خونده بشه خب میتونی شو نائب یعنی کسی که بیجرد شو نماز مخونده مثلا به بچهش میگه آف بیا مهم آب آوردنه ممکن بگه دیگه بیا یا نه مهم این است که این شخص هم مباشرت انجام بده یعنی صدور این فعل از شخص هم دهاز شده نه تحقق عمل عملفی نفسه بهیتی که ین دلت و اله این بر آب این اسمش رو چند ت و تی اصطلاح می نیست تبون خ قربته اما آان مثل نایگه و مع توی این رو در اونجا اووراند آیا مبا باشد میگرد اونی که درش اعتبار مبا شده اسم ت اونی که هم از م باشد به این مناسظرت در اونجا بحث کردند دق بر که آیا؟ محتوای قاعده اعتبار مباشرت یا نیابت هم کافی است. و اونجا دو بحث کردن من چون اونجا خیلی مشمئز آوردم، چون در ذهنیت یک انسان عالمی که از ذهنیت مهمش همینه، یک مطلب رو ممکنه بگید که یک کلمه باشه اما یک دنیا معلومات توش خوابیده. به استرام مثلا مثلا من چند بار بحث کردم، مثل کوه یخت میمونه که انسان تو دریا میبینه. متعارف کشتی‌های نکنه که کوه یختی تو دریا خیلی چن که نزدیک نمیشن چون میگن این یک دهامت خورده بقیه زیر آبه. اون قسمت مهمه زیر آوه به های بزرگ هم همینطور یک کلمی که میگن نه زیر آوه <تصفيق> <تصفيق> این نیست که فرض اینی که ایشون به دلیل علت و اصول عملیه لا و حال شک قبیله گفت نه دهامت زیر آب بخ در اونجا هم دو بحث کردن خوب بحث از آیا اصل این هست که مباشرت باشه یعنی عقم السلاح آب بیا مختزای اصلاح اصلاح اصلاح حقیقه مختزای اصلاح حقیقه خود این طرف بیاره یا نه مختزای اصلاح حقیقه بگیم نه مراد خودش یا غیرش بیاره اصلاح اون منه اسلام یعنی مهم نه اطلاق لفظی یعنی مهم است که آب بشه پس یک دنست راجع به اصول لفظی داره یک بحث هم راجعه به اصول عملی داره. حالا اگر به لحاظ لحظی معلوم نشد فرصا این کسی گفت کس دیگر به جای اونا ما ظهر بخونه مقتضای اصل عملی چیه؟ اصلا میگم مقتضای اصل عملی مباشرت چون شک ممكن تکلیف ثابت شده نشد یا نه؟ از حاطول اشتغال جاری میشه از حاطول احیاب از این دائما شک در تکلیف مجرای براعته شک که در سقوط ت شک در صبوت تکلیف مجرای براعه و شک در صبوت تکلیف مجرای اشتغال یا افتیاد. شکل شک میکنه تکلیف از اون ساخت شده نه اصحابهش. و در اونجا حالبا مختزای حد و عصر رو مباشرت گرفته یعنی ظاهر عقم صلاح که خود انجام بده. کسی دیگه بخواد انجام بده دلیل میخواد اصل عملیش هم اختضا میکنه خودش انجام بده چون از تا طول احتیاج جاری میشه جایی شد پس ایشون اشاره برمودن وقت پس بنابراین این, این میشه. می اصل اولی این است که نیابت درست نباشه مباشر از کسی دیگه انجام بده درست نیست این هم مختزای اصل لحظی هم مختضای اصل عملی این هم مختضای درست نیابت این نیابد ظاهرش مال خودشه لا تنقضی یقینه بشه خود اصل لحظی هم ندارین که اختضاق بکنه مردشون بعد ایشون فرمودن به این که و تحقیق جواب ایشون آه خویه جواب طولانی دادن صفحه هم نزدیک دو صفحه خیلی چیز محسنی که نداره بله ایشون میفهمن که اگر خوب می مایلتر به الی المقلل مقلدم خودش انتفاس میکنه و شک میکنه مثل همون مثالی که دیروز عرض کردم آب قليلی است که نجاست روش تا کور شد الماء کردن خب گفتن استصحاب بقاء نجاست میشه به لحاظ حکم شرعی کلی خب ایشون میگه مقلل مشتهد انیوج رئ الاستصحاب به لحاظ یقین مغلد و شک کیش نداره مشتهد میدونه به لحاظ یقین و مقلل و شک مکلف هم شک مقلل هم اصل استثار رو جاری کنه هم به لحاظ خودش میتونه جاری کنه هم مقلیف. مقلیف به لحاظ مقلل یعنی به مقلل میگه در اینجا حکم سابقش نجاست بوده الان هم شک داریم استثار میکنیم بقای نجاست رو اون وقت میتونه ایشون میفهمن و الله و انیوج ریال استثار بله بله به لحاظ یقین نفسی از کردم من یک نکته ای رو روزهای گذشته از کردم که در کلمات استاد توضیح داده نشده شاید ایشان این بوده ایشون میگه هم میتونه به لحاظ حال مقلد استصحاب بکنه یقین و شک رو هم به لحاظ حال خودش چون متعقن به حق در حق مقلدش بوده و شک در وقع داره فیجر استصحاب و یفتی به معداد مراد از معده یعنی یکیوجر استثاب خود اون مشهد استثاب رو اجرا میکنه و حکم به نجاتت میکنه و یرج علم بله مقلد علی منباق رجوع الجاهل علل آلم از باب رجوع به خبره مقلد به ایشان رجوع میکنه مقلد میتونه در این جهت ایشان این عبارت ایشان این عبارت استاد همینطور که در روز قبل هم اشاره کردم ممکن است ناظر باشه به مطلبی که من عرض کردم مرحوم آقای محقق اراحی این رو واضحا فرمیدن مرحوم استاد واضحا نه اون مطلب این بود سؤال این بحث چه ای داره؟ که آیا ادله احکام ادله اعتبارات ادله حصول و به اصطلاح هجج و امارات شامل مقلل هم میشه من موازیا میفرونم اگر بگیم شامل نمیشه خاص به مشعله در اینجا وظیفه ای مشهد این است که به همون حکم فقهی بده مثلا این آبی که متمم قرنه میگیم ادله استصحاب شامل حال مقلد نمیشه در اینجا وظیفه فقيه اینطور است بگه ایو علی مقلد آبی که صاغرا قر نبود و نجس بود و حالا تطهیم شده این نجس این، اینجوری فتواه اما اگر بگیم عدله شامل حال مقللت هم میشه آزیا ظاهرش میابده مشهد قارم مقام مقللت میشه دیگه ای ها حال اگر انسان در جایی یقین به حکم سابق داشت و شکر میتواند به همون یقین خودش بمانه اسم این استصابه این یک دو ما یقین به نجاست آب داشتیم دقیق واضحی بر تهاراتش بعد تطویم تط... تط... تط... تط... کر نداشتیم میتونه همون مقدمات اشتحال رو بگه خب در این صورت مقلل چه کار میکنه جاری جایی میکنه نظر منوازی اینه ولذا میتونه مشهر دو جور فتوا بده یک اون نتیجه نهایی رو فتوا بده بگی این آب نجسه این نتیجه نهایی میتونه بگه نه این شائبهن نجس بوده با تصمیم کور شک میکنیم دلیلی نداریم بر پاک شدن شاره هم فرموده استصحاب بکن اینا رو بگه مقلد استصحاب بگه پس بیان خصوصیات رو روشن شد مشتهر انجام بده مقلد اجرا ایشون فارق بین این دو این قرار داده مطلب از این عبارات مربوط به معلوم میشه همین مطلب ترشون اثر خیلی واضح نبرمیده این کلام من شردا واضح شد ایشون میفهمند که ممکن است فل ان یوسی الاستصحاب به لحاظ یقین المقبل ولیشون یوجی گفتن ولی ابهام داره عبارشون این کلام آزیانی شبیهونه مشابهونه و شک فيه و لاو ان یجعل الاستصحاب به لحاظ یقین نفسی دیگه چه یوحیاله استصحاب نمیگفتن له و ان یقول مثلا به این که حالت سابقه اینه و فقط هم در ادله کردیم دلیل بر ثواب پیدا شد و لذا مثلا اصر کردن اشاره از این تصور انسان که میاد یه چیز دیگه ای اشاره شبیه این مروضی ها خیلی واضح فراموندن البته آذیا به خودشون نشکار کردن که خب این ترتیبی که شما مثلا خلاف معلوم و در حساب عملی همچین چیزی در جایوا المخالف شما مسئله مثلا آه... کشیدن سیگار ما دلیل واضحی نداریم قهری قابل ابلاغ میشه جالب شما فرض کردیم چیزی پیدا نکردیم اصلا راست نیست نیستش مثلا کشیدن سیگار جایز نیست اصلا مکروه است نیست درست راست از باب تسهیل یعنی آیا واقعا مشهد این کار رو میکنه <مخلح> اون مقدمات اجرای احتساب رو مشتعل نائب میشه ایشون معمولا ازم نائب میدونند آی کودی در اینجا عبارتشون خیلی در این قسمت اول سریعی نیست حالا من عرض میکنم بعد ایشون میفرمایند که و امکان الحكم مالای الفتویله المقلد که ازاله مییکن فعلی یا حقیقی این لم یکون حکم فعلی یا حقیقی در حق مشته عبارات ایشونه یعنی در حق مشته خیلی نشده مثلا مالک نساب نیست فلاود دل المشته ان یه جریل استصاب به لحاظ یقینی و شکی این زمیر یقینی و شکی به مقلب می و بز... یه کلمه عبارتش بیجور شده لکومی هی متیقن به حق مقلبی هی. شاکن به بقای بقا ها. الان ما تقدر و که به راکان شک مدلل به کم در فلان و یرج المغلط امده اینه ممکن است که استثاب رو بلهاز یقین مقلد و یرج المغلط رو علیه پی جمعی ازالت منباب رجوع الجاهل العالم. اون چیزی که اینجا من مخاب نقطه عرض بکنم من مستاد فایی میابرد نیست که شیخ انصاری فرنده، چون دهیلی برای میابرد نداره اما این رجوع آلم به جاهله چرا لما تقدم من عدم اختصاص ها هو. حقه مرادیشون هدرگذشتن رجوع جاهل با عالم، به ما ادعا علم علم عالم مستنده. اینمی مخاطب ماست؟ اینجا احتمال داره که مرادیشون باز استرس به لحاظ خود مشتهد باشه، و خیلی بعید به لحاظ عالم مقلد باشه. مخصوصاً که بعدم ایشون داره، از عبارت بعدی ایشان، بعدم اون اشکال بحث مطرح کردن که مقلد زیمی تونه بکنه. از این جواب ایشان این مطلبی که ما استظهار هار کردیم در نت. جواب انل مشتل یک و یوب نوع له و سغه این لهوب مغللب میخوره. مشکل خودش فرصل میکنه و بیان صخ برای مغلت میکنه و انل مقام ماللا توامفی یا حتون علىد تلیف این که من عرض کردم اولش کمی خلاب زاره بود که به ابار پیشان و اگر ج مقل دوله مباب روژه خبره. این چی ای مخاطب بگه ببین خوب دقت کنید اینی ای که مخاطب بگه در اینجا بیان نیست مشریع انجام میده شیخ میگه به نیابت از مقلد ایشون میگه نه این نیابت جایی نداره مقلد و روش این که از کجا به خبره این سؤال اینه فرق بین نیابت داره جو دل اهل خبره چیه باید درست هم هست یعنی با بیان فرقشینا آیا مطلب درست هست یا بعد ایشون و که المغلد و علی منباب رجیل و اهل خبره تشکیث صغرا در تشکیث صغرا نیابه نیست رجیل و اهل خبره فیستقل لعقله در اینجا عقلش مستقل میشه بزرگان و علمان مخالف هستنش مستقل میشه میفهمون به مستقل بیه عقل المشه من خبه الاقاب بلا بیان تکون ال کبرا وجدانیتن للمقلد این کبرا که قفه اقاب بلا بیان باشه این برای مقلد وجدانی بعد تشکیص صغرا که در اینجا نیست به روجوه الالمشتهه در تشکیص صغرا روجوه میکنه مجتهه به جهت روجوه الهل خب روشن شد حالا بعدشون برای افرزه ان المقلد نمی کنه احلا لعدرات و حکم اعقل حالا چون ایشون و بزرگان و هستن که میگن اینجا در ذر محتمان جاری میشه یا قاعده حق و طاقه به اطلاع و دو فور زن المقدر زن میکنه اهلاً لی ادراک بکنه اقوه به ظاله یعنی ایشان رجوع میکنه به اهل خبره که مشتهده میگه خب حقا بلا برم در صغرا هم رجوع میکنه به مشتهد که میگه در اینجا بیان میگه بعد از رجوع به اهل خبره در صغرا و خبره وقت برایت اجرا میکنه من واقعا نمیتونم واقعا این تبیر چیز خوریشون چیز استظهار اجراع برایت طرفینش رو کسی دیگه احراز بکنه بعد دین آقا بگیم تو می‌تونی احراز بکنی فکه ما بیانه بای بای بای بای بای بای بای بیانه لگو انال مقام مالم تقام فیه حجتون علا تکلیف یو بیان لگو انال اقعاب بلا حجه و بیان بلا و بیان قویحون به حکم اقل این هم پس بنابراین هم صغرا و هم کبرا رجوع میکنه از جرز رجوع به حده خبره نمیابد بعد بعدم خود ایشان اجرای براحت میکنه من نمیتونم اجرای براحت چیه که تمام از دیگری بگیره بعد ایشون که به جمله در جمعی موارد عجز مقلد از تشخیص مجرای اصل عملی لا نبول به اندر مشته نایوان همه مقلد حتی نطالبه به دیل نیابه بل نقول این المشتهی بیونفته و, و مجرد است و حسن وظیفتی، بعد ایشون یک مطلب دیگری بره که این هم از تعجب خیلی کم از باقیش نمیاره فه این وزیفت المشتهی یه وزیفت الامام علیه از فلا. اصلا مراد ایشان این چیزی باشه رقیه بیان الاحکام از مجعولت به شریعت المقدسه به نحو القضای حقیقیه، بل وظیفه این هست اما امام نا به اصحاب رو جمع میکنه نه به خبر واحد مراجعه میکنه تعجب از ایشون ظاهر ایشون مثلا اینجوریه تسوّف کردن ثماکی سازنده غایت الامر ان علم الامام بالله خوفی انتهی الى البحث و المشتعل هات رو من ظواهر کتاب و این غایت الامر نیست این بدایة اثره ما حتی اصل كلام سره همینه کون عدلی که میگه ظواهر کتاب و حجته شامل مقلد میش این عدلیت برای امام که معنی اینکه وظیفه نهایی اونها بیان احکام الهی است، بحث می‌زنن، بحث ماده اما آیا اونها به استثنا در احکام کلیه برمیگشتن مثلا مثلا به خبر زراره و خبر فرس ابو هرره و عایشه هم می‌کردن؟ بحثونه. تعجب از ایشون من چه سرزنی نبودم. آیا اون خودشون بد می‌دینه. بله. زار و المقلد یرجو الی من با رجوع جاهل العالم فی تشخیص الکبرى سغرا و تعیین ماجل فقط افی تطبیق کبرا ایزم هم کبرا و هم سقرا رو مقلد با آن رو میکنه من جهت بیان برد و خب حالا این یک مطلب عرض کردم خود ایشان زوابطی و فوارقی ما بین این دوتا نگذاشتن بحث آیا مسئله نیابد فرقش با مسئله روژه لحظ خبه در کجاست و آیا ما نحنفی حق با مرموم استاد برفردان درست باشه که درست هم نیست برفرض هم درست باشه آیا از قبیله نیابت یا از قبیله رجوع الجاهل الان ال احمد خبره است اصطلاحشان ارثونم که مقتضای قاعده این طوری مراد ایشان یعنی مراد هر کسی که قاعده است نیابت باید در جایی فرض بشه که اونجا طریقیت صرفه هر جا که تاری... مطلب به نحو طریقیت صرف عرض شده کسی دیگه انجام بده نیاواته این قاضی اسمش نیاواته این روجلو اهل الخبره نیست مثال هایی که سابقا هم زدن فرض دارم دارن که آقایون وقتی که در بیابان هستن تا یه قلعه‌ای سم یا قلعه‌ای سهم باید بره آب پس په، په، از آب بکنه یاد کردم من در یک کتاب نامه یاد دارم در زمان سابق یک می بوده یعنی یه استاندارد هست برای توفنگ ها و برای اصل انواع ها یک برد معینی نوشتن برای تیر هم برد عویش 400 متر بوده که محصر نباشه برد محصرش هم 200 متر بوده تیره که میزن حالا قلبات سنگ رو یا 400 متر بگیریم یا 200 متر بگیریم فلسین یک کلومه اگر فلسین هزار نفر توی کاروانه بودن این معنی شیست که هر کدون تک تک باشن 400 متر 400 بیاد برگردن دو نفر میرن برمیگردن میگنه آ نبود اینجا رو ببینید، اعتماد قافله به قول این دو نفر از باب نیابت اینهاست یا از باب رجوع الهی خبر است این از باب نیابت است. چون خبر رو می‌بینی می‌خواد اینجا اینا مخواد بگن آقا ما رفتیم تا این مسافت یک کیلومتر آب نبود و برگشتیم این رو میگن اصطلاحاً نیابت پس معیار در نیابت در جایی است که فقط طریقیت باشه و نظام مثلا در امور مالی نیابت قبول کرده به طور تامی خود میگن در امور مالی یک قاعده عرفی و قضایی هست که مراد جدی وصول ماله من به شما مدیون هستم کسی دیگه از طرف من میاد پول به شما میده میگه کلا نمیام نگید پولی که تو من از اصلن خواستم پول به شما دادم آیا در اونجا لازم از خود طرف بده میگن نه کسی دیگه هم از طرفو بده براءت ذمه پیدا میشه اما در تکالیف بدنی بناشون که بر که نیابت بر داره طبیعت تکالیف بدنی مثلا اگر گفتن و رضا کجا مجازات کردن میشه پس اون یک تکلیفی باشه مثل کفارات مثلا میگن این شخص یا دو ماه زندان میره یا دو تو هم باید پول بده اون دو ماه زندان شکیف بدنیه خودش واسه زجر بکشه اون نیابت بر نمیذاره اما اون دو تو من چی اون احتمال داره از قبیل دین باشه نیابت برداره احتمال داره از قبیل تکلیف بدنی باشه زجر رو واسه میشه نیابت بر نمیذاره روشن شد پس ما کلمه نیابت رو در جایی به کار میبریم که درش خبرقیتی نباشه طریقی صرف باشه اونجا رو میگیم نیابت اما روجو اهل خبره کجاست اونجاییست که موضوعیت داره حدس میخواد خدرک حدس میخواد بررسی میخواد اونجا رو ما میگیم روجو اهل خبره همینجا رو میگیم روجو احل خبره نیابت استرام میگیم که بلد میست نمیشون مباحثی این ساده رو کلی در اینجا اون وقت این بحث خوب بکنی بکنید اینکه بیان نیست آیا این از قبیل طریقی صرف یا موضوعیت داره آمازیار می‌خواد بگه این طریقی صرفه خوب بفرس بکنه یعنی چی یعنی من کتاب‌ها رو نگاه کردم مسائل غیر وسائل روایتی که لازم درhormat بکنه نبود این طریق صرفی خوبی میخوام بفرن نه همین که نبودم هم یک نوع خبرویت می‌خواد حث میخواد. پس این خودشان توضیح ندن توضیح من ارز میکنم پس این برای شما تحلیل شد آیا رجوعه به تشکیص صغرا این از باقه رجوعه به اهل خبره هست یعنی تخصص میخواد اونم نقطه میخواد اونم حدس میخواد خبرقیت میخواد یا نه؟ دیگه اون خبرقیت نمیخواد حالا من برای اینکه این مطلب تلی وجدانیتر و روشنتر برشه برای شما مثل رجوعه به یک دکتر ببینید شما در رجوع به یک دکتر دو جوره یه دفعه دکتر میان میاد مثلا در معده شما سلام ویروس هست این یکی یه دفعه میگه شما مرض فلان داریم. این دوتا با هم فرق میکنند فرقش هم اینه برای شما آزمایش می نویسه شما آزمایش میفرستید به زبان انگلیسی یا اصطلاحات نمیشه میارید بیاید دکتر نشونید آید دکتر میگه تو آزمایش نوشته توی معده شما ویروس هست این خبرگیتی نیست این رجوع به نیست چون این رو نوشته اون آقا بلد نوشته رو بکنه این شخص بلد بکنه فرقش اینه دقیق بکنی اون آقا بلده بکنه اون آقا بلده پس اگر دکتر گفت آ این ورقی آزمایش روشن شد چون خود من استاد به اگر روشن تو این ورقی اینجا نوشته ویروس فلانی در مهده شما هست این چی میشه میشه نیابر. این نیابر نیست اما اگر دکتر گفت من میگم شما مرض سرطان مثلا کبد گرفتین از این ویروس در معده تشخیص سرطان کبد میشه هست این چه وضعی دراهر چون ممکنه شما همین برگه آزمایشه که به یک دکتر دیگه تشخیص بده بگه نه شما ویروس دید. مثلا سرطان کبد نگرفتین فلان درد دل بخنگه فلان ناراحتی ببد گرفتین درست کاری دو تا چیزه یکی نیابت روشن شد یکی هم رو اهل خبره در اینجا حضرت استاد یا حتی خود مرمو آزیا یا مانسره رشیخ نسبت نزن که انما با ارتکازات ما ارجاع دادن پس بنابراین ببینید شما خوب دقت بکنید یک دفعه دکتر میگه این ورقه نوشته بلان ویروس وجود داره این میشه نیابن این روژه لحظه خبره میشه اون لغت رو بلد نبود برای شما معنا کرد شما انگلیسی رو شدید بکنید برای شما معنا کرد یک دفعه نه؟ من استظهار می میکنم که تو مثلا پلان مرضی گرفتی این میشه رو جلال خبره پس یک مرحله حد و خبروییت اون میشه رو خوبه، خبره یه مرحله واقعیت اصلا طریقیت صرفه در دکترها هم همینطوره یه دفعه دکتر به می شما میگه در معده شما پلان ویروس هست پس شما فلان مرض رو دارین. این, این رو هم ما در تق دارید در تق دارید. آزیو میگه وقتی که مشکل میگه بیانیت از قبیل تشخیص ویروسه، نیاوته. خوب، دیدید زندگی دلارشو وقتی آید فهید میگه آها در این مسئله من گشتم، دلیلی پیدا نکردم برای آبی که متمم کرم، دلیلی بر طهارت پیدا نکردم، پس شما احتساب بکنید، حساب به نجاست بکنید. این قسمت رو به عهده مشتهد گذاشته اگر اینطور تصویر بکنید میشه نیابت همون که شیخ و آغزی بودن. اگر بگیم نه این هم یک نوع خبرویت میخواد خود این هم خبرویت میخواد چون باید بیان بیان آم مثلا خوبه اقاب بلا بیان خود این که بیان چون یک آرون اخواری میگن ما یک بیان آم داریم از علیه وجوب افیاد از باید دفعش مثلا را انده بکنه. هم دیگه بحث کردم در روایات روایت صحیحی که من خودم قبول دارم و درست هم سندش قابل اعتمادانه با عنوان دلیل بر حرمت سیگار کشیدن پیدا نکردم و لذا بیان نداره سیگار کشیدن حرمتش اگر ثابت باشه بلا بیانه چون نمیشه حرمت بلا بیان از به خاطر قوه ای حرمت این تصبرمت نداره مخاطب بده به عهده مکلف به عهده مکلف آزیا میگه شعن مشته در اینجا شن نیابته چرا؟ معیارش آن عرض کردی هر جا شعن طریقی صرف شد میشه نیابت هر جا خبرویت داشت میشه بودی لحظه خبره مده استفانه نه استاد و آزیا توضیح مطلب ندادن و خلزا روشن شد الان هر به رو خونید گفت فقید دو جور میتونه فرق بده یکی حکم رو بگه بگی این آب نجسه یکی بگه این سابقا نجس بوده دلیلی بر طهارتش نمواد شما مغلظ همینش رو بکنید این دقیقاً مثل رجوع به دکتره یه دفعه دکتر میشوه میگه آ شما مرض سرطان کبد دارید این دوارام مصرف بکنید آیا کار دکتر اینه یا دکتر میگه بله من آزمایش های شما رو دیدم فلان چیز در ویروس در فلان ویروس در معده شما هست فلان چیز در هوده این دو تا میشه به نظر طبیب مثلا دکتر به سرالتان کبد نتیجه میگیریم که شما سرالتان کبد دارید دقیق بگنید این دقیقا مثل اونه و آزی قبول داره که این متعارف فوقها نبوده که بیا بگنید در این مسئله حدیث صحیح هست معارض هم نداره ادزه مخالفت کردن لیکن فتحان پس شما میتونید با عنوان مقلد اون رو باید عمل بکنید خدا آزه قبول کی که این متعارف نبوده متعارف حقا ها به خود حکمه و انصافا و همین مقدماتی که حضر کردیم غیر از اینکه که متعارف نبوده اصولا این نهوه تصور که ما یک حرکت فکری انجام بریم تمام مقدماتش از دیگری بگیریم و اون مسئله درش خبرویت شرط باشه به تعدیر خود استاد هم و هم کبرا درش خبرویت شرط باشه چون باید درش خبرویت شرط نیست داره او جلال خبره باشه هر مسئله‌ای که درش خبرویت شرط باشه صغرا و کبراشو کسی که خبیر نیست از یک خبیر بگیره که هر دو هم خلافیه انصاف قضیه اینجا هیچ وضوفی نداره که به اصطلاح اینجور فهمی از مصوص و از این حرکت فکری به عنوان یک حرکت فکری فی نفسه داشته باشیم یا به با عنوان یک وظیفه عملی در قوانین. که ایک استاد قانون دسته مطلبی که خبرقیت میخواد حبس میخواد قدرت علمی میخواد اینا رو تنقیل بکنه به مقلد بده مقلد طبق نظر او بخواد اجرا بکنه خب یه خبیل دیگری هست میگه نه آقا نه در اینجا بیان هست نه قابل آقا قبول داری پس این چین مسائلی طبیعتا جای رجوع اصلا جای بیان او از طرف مشهر نیست و شامل مقلب هم نمیشه پس اگر مطلب طریقی سرف باشه نیابت روجوی لحظ نیست که استاد فرنده. اگر مطلب مسئله خبروییت چه در تشکیس سقرا چه در تشکیس کبرا این از اون اصالات عدم دلیل بر نیابت این مهمتره این اصلا دلیل نداره یعنی هیچ نکته و اغلایی میگن بگن مطلبی که احتیاج به خبروییت داره یک خبیر اون مقدمات خودش رو بگه یک تابع ری مقدمات خودش مقلد بیاد اختیار بکنه که از این مقدمات رو این هیچ جایی برای اشاره چون محفوظ کلام نیست که مقلد رجوع می‌تونه بکنه به شخص دیگر در جایی که از قبیل نیابت طریقت صرف داره میتونه رجوع بکنه به سه نفر چهار نفر رفتن در یک عقب نیست برگشته میشه رجوعی مشکل نداره که این طریقی از اما شناختن که به که احیاجی بحثه این هیچ وضوحی نداره من مساده به جمع بکنم چقدر زخص میخوام جمع بکنم گذشته پس صژ محمد.